9 تاریخ پس از انقلاب کشاورزی جوامع انسانی گسترده تر و پیچیده تر از گذشته رشد کردند و همزمان ساختارهای خیالی حافظ نظم اجتماعی گسترده تر و پیچیده تر شدند استوره ها و خیالات انسان ها را تقریبا از لحظه تولد با فکر کردن به شکل معین، رفتار کردن مطابق با میارهای معین، خواستن چیزهای معین و پیروی از قواید معین منوز کردند. این استوره ها و ساختارهای خیالی قرائزی ساختگی به وجود آوردند که میلیونها ها را قادر به همکاری مؤثر کرد. این شبکه قرائزه ساختگی فرهنگ نامیده می شود. در طی نیمه اول قرن بیستم محققین ترویج می‌کردند که هر فرهنگی کامل و هماهنگ است. هر کدام یک جوهره پایدار دارد که آن را برای همیشه تعین می‌کند. هر گروه انسانی جهانبینی خاص خود و نظامی از نظم و ترتیب‌های سیاسی، اجتماعی و حقوقی خود را دارد که همچون گردش زمین به دور خورشید موزون است. بر اساس این نظریه، فرهنگ‌ها چنانچه به حال خود گذارده می‌شدند، تغییری نمی‌کردند و در همان مسیر و با همان سرعت همیشگی خود ادامه می‌یافتند. تنها یک نیروی خارجی می توانستان ها را تغییر دهد مردم شناسان مورخین و سیاستمداران به فرهنگ ساموان یا فرهنگ تاسمانی استناد می کردند که در طول تاریخ همان باورها هنجارها و ارزش های خود را داشتند امروزه اغلب محققین فرهنگی به این نتیجه رسیدند که عکس این نگرش مستاق دارد هر فرهنگی باورها، هنجارها و ارزش‌های معمول خود را دارد اما اینها مداوما در نوسانند فرهنگ در پاسخ به تغییرات محیطی یا در روابط متقابل با فرهنگهای مجاور قابلیت دگرگون شدن دارد اما فرهنگها همچنین به دنبال پویایی درونی خود هم دچار دگرگونی می شوند. حتی یک فرهنگ منظوی در یک محیط زیست پایدار نمیتواند از تغییر اجتناب کند. برخلاف قوانین فیزیک که بری از تناقض هستند، هر نظام ساخته دست انسان با تناقضات درونیش گره خورده. فرهنگ پیوسته پیوسه در تلاشند تا این عوامل متضاد را با هم آشتی دهند و این روند منجر به تغییرات می شود. برای مثال در اروپای قرن وستا نجیبزادگان به مسیحیت و دلیری اعتقاد داشتند. یک نجیبزاده معمولی هر روز صبح به کلیسا می رفت و به سخنان کشیش در مورد زندگی قدیسان گوش می داد. کشیش از بیهودگی بیهودگی ها سخن می گفت. همه چیز بیهوده است، ثروت شهوت و افتخار وسوسه های خطرناکی هستند. شما باید فراتر از اینها بروید و از مسیح پیروی کنید. همانند او فروتن باشید و از خشونت و افراد بپرهیزید و اگر مورد تهاجم قرار می‌گیرید گونه دیگر خود را بگردانید. وقتی نجیب زاده غرق در افکار و حس تواضع به خانه باز می‌گشت، بهترین جامعه ابریشمی خود را به تن می‌کرد و به ضیافت قصر شاهزاده می‌رفت. در آنجا شراب همچون آب در جریان بود. خونیاگر نقمه لانسلوت و گوینور سر و مهمانان تنس های رکیک و حکایت از جنگ خونین برای هم تعریف می کردند. میزبان می بهتر است بمیریم اما با سرفگندگی زندگی نکنیم. اگر کسی خوشنامی شما را زیر سوال برد تنها خون است که میتواند توهین را پاک کند. و چه چیزی در زندگی بهتر از این است که ببینید دشمن شما از مقابل شما می‌گریزد و دخترهای قشنگشان به پای تا می افتند و به خود می‌لرزند این تناقض هرگز به طور کامل حل نشد اما آن که نجیبزاده ها روحانیون و عوام در اروپا با آن دست و پنجه نرم می‌کردند فرهنگشان تغییر می‌کرد یک تلاش برای پیدا کردن راه حل به جنگهای صلیبی منجر شد در یک جنگ صلیبی واحد دلاوران می توانستند سلحشوری نظامی و از خودگذشتگی مسیحی خود را نشان دهند همین ها سبب ایجاد های نظامی و جنگهایی میشد که دو طرف تلاش میکردند آرمانهای مسیحیت و جنگاوری را باز هم تر از گذشته با هم پیوند دهند و این بخش بزرگی از هنر و ادبیات قرونوستا را تحت تأثیر خود قرار داد مثل داستانهای کینگارتور و جام مقدس حماسه کاملوت چه چیز دیگری میتوانست باشد به جز تلاشی برای نشان دادن اینکه یک جنگاور خوب میتواند و باید یک مسیحی خوب هم باشد و مسیحیان خوب بهترین جنگاوران هستند. نمونه دیگر نظام سیاسی نوین است. از انقلاب فرانسه به بعد مردم سراسر دنیا به تدریج به این باور رسیدند که برابری و آزادی فردی جز ارزشهای پایه‌ای هستند. اما این دو ارزش یکدیگر را نقض می‌کنند برابری می تواند تنها با محدود کردن آزادی گروههای ممتاز تحقق یابد تضمین کردن اینکه هر فردی آزاد است تا هر کاری که می‌خواهد بکند به ناگزیر برابری را محدود می‌کند تمام تاریخ سیاسی جهان از 1789 میلادی می تواند به عنوان یک سلسله تلاش برای آشتی دادن این تناقض دیده شود هر کسی که داستانی از چارلز دیکنز خانده باشد می‌داند که رژیم لیبرال قرن نوزدهم اروپا به آزادی فردی اولویت می‌دادند. میدادند حتی اگر به این مفهوم بود که خانواده های فقیر به زندان بیفتند و کودکان بی سرپرست امکان دیگری به جز آوردن به جیببری نداشته باشند. همه آنها که رومانی از الکساندر سولژنیتسین را خوانده باشند می‌دانند که آرمان برابری طلبانی کمونیسم چگونه منجر به استبداد خشنی شد که تلاش می‌کرد تا بر تمام عرصه های زندگی روزمره اعمال کنترل کند. سیاست آمریکایی معاصر هول همین تناقض می‌گردد. ها خواهان یک جامعه برتر هستند حتی اگر این به معنای بالا بردن مالیات‌ها برای تأمین مخارج برنامه‌های کمک به افراد کم بزاعت، سالمند و ضعیف باشد اما این یک تجاوز به آزادی افرادی است که می‌خواهند پولشان را به اختیار خود خرج کنند چرا باید حکومت مرا مجبور به خریدن بیمه بهداشت و درمان کند؟ در حالی که خود من ترجیح می دهم که این پول را برای مخارج تحصیل فرزندانم پسنداز کنم. از طرف دیگر جمهوری خواهان میخواهند آزادی فردی را به بالاترین حد برسانند؟ حتی اگر به این قیمت باشد که فاصله درآمد میان غنی و فقیر بیشتر شود و بسیاری از آمریکایی‌ها استطاعت پرداخت حزینه درمانی خود را نداشته باشند. درست همانطور که فرهنگ قرون بستا موفق به ایجاد سازگاری میان دلاوری و مسیحیت نشد، جوامع نوین هم موفق به آشتی دادن میان برابری و آزادی نشدند. اما این یک مشکل نیست. این تناقضات بخش جدایناپذیر همه فرهنگ ها هستند. این تناقضات در حقیقت موتور محرکه فرهنگ برای خلاقیت و پویایی گونه ماست درست همانطور که نواختن دونوت متناقض در ترکیب با هم باعث تحول قطعه موسیقی می شود یک اختلاف در افکار، اندیشه ها و ارزش ما را ملزم به تفکر، بازبینی ارزش ها و نگرش انتقادی می کند سبات بستر خوشک مقص هاست اگر تنش ها،, ها و تردید های غیر قابل حل چاشتی هر فرهنگی است، هر انسانی که به فرهنگ معینی تعلق دارد، باید عقاید متناقضی داشته باشد و بین ارزش های ناسازگار در نوسان باشد. این خسنت بنیادی هر فرهنگی است که ناهماهنگی شناختی نامیده می شود، ناهماهنگی شناختی اغلب به عنوان درماندگی روحی انسانی غلم داد می شود، اما در حقیقت این امکانی حیاتی است. اگر مردم فاقد باورها و ارزشهای متناقض می بودند، شاید امکان قوام یافتن و حفظ هیچ فرهنگ انسانی وجود نداشت. برای مثال اگر یک مسیحی بخواهد مسلمانی را که به مسجد می رود درک کند، نباید به دنبال مجموعه ارزش های ای و مقدس هر مسلمانی بگردد، بلکه باید در جستجوی معماهای فرهنگ اسلامی باشد، یعنی فضاهایی که در آن احکام و هنجارها در ستیزه با هم هستند. مسلمانان در بهترین حالت درست در آن نقطه تلاقی میان رکن پایه متناقض شناخته می شوند. ماهواره جاسوسی فرهنگ های انسانی من در تغییرند آیا این تغییر پذیری تصادفی است یا بر اساس یک الگوی کلی صورت می گیرد؟ به عبارت دیگر آیا تاریخ سمت و سوی معینی دارد؟ جواب مثبت است تای هزاران سال، فرهنگ های ساده و کوچک به تدریج در تمدنهای بزرگتر و پیچیده تر حل شدند، به طوری که دنیا حاوی شمار کمتر و کمتری از فرهنگ های بزرگ شد که هر کدام بزرگتر و پیچیده تر از دیگری است. این طبعا یک کلینگری خام در سطح کلان است، در سطح خورد به نظر می رسد که برای هر گروه از فرهنگ که در یک فرهنگ کلان می آمیزند فرهنگ کلانی وجود دارد که به اجزای فرهنگی کوچکتری تجزیه می شود. امپراتوری مغول بر بخش های عظیمی از آسیا و حتی قسمت از اروپا چیره شد و به اجزای متعددی تقسیم شد. مسیحیت صدها میلیون نفر را به کیش خدا آورد که همزمان به تعداد بیشماری فرق تقسیم میشد. زبان لاتین در سطح قرب و اروپای مرکزی رواج یافت و به گویش‌های محلی تقسیم شد که بعدها به تدریج زبان ملی شدند. اما این انشعابات نوسانات موقتی در یک روند انعطافناپذیر به سوی وحدت هستند. درک مسیر تاریخ به واقع به جایگاه نگرش بستگی دارد. تا جایی که تاریخ را به اصطلاح با چشم پرنده می نگریم و تکامل را در دههها و صده ها دنبال می کنیم، به دشواری می توانیم تعیین کنیم که آیا تاریخ به سمت وحدت می رود یا کسرت. اما برای درک فرایندهای طولانی مدت، چشم پرنده کودح نظرانه به نظر می آید. به جای این باید تاریخ را از یک بعد کیهانی ماهباره های جاسوسی بنگریم و به هزارها ها خیره شویم، نه به صده ها. از چنین منظری بسیار روشن خواهد بود که تاریخ به طور اجتناب ناپذیری به سمت یگانگی پیش می رود. تجزیه مسیحیت و فروپاشی امپراتوری مقل دستانداز های سرعتگیری در شاهراه تاریخ بودند. بهترین راه برای یافتن تصویری از مسیر کلی تاریخ این است که تعداد دنیاهای انسانی مجزا از هم را که در هر مقطع معینی بر روی کره زمین در همزیستی با هم بوده اند به حساب آوریم. امروزه عادت کرده ایم که به کل سیاره به عنوان یک واحد یگانه بنگریم، اما در طول تاریخ زمین در حقیقت یک کهکشان کامل از دنیاهای منزوی انسانی بوده ما می توانیم به نمونه تاسمانی جزیره ای با مساحتی در ابعاد متوسط در جنوب استرالیا اشاره کنیم این جزیره در حدود ده هزار سال قبل از میلاد در مقطع پایان دوران یخبندان زمانی که سطح آب بالا آمد از بخش خشکی استرالیا جدا شد در این جزیره چند هزار شکارگر خوراکی زندگی میکردند و هیچ ارتباطی با انسان دیگر نداشتند تا اینکه در قرن نوزدهم اروپاییان به آنجا رفتند تی دوازده هزار سال کسی از وجود تاسمانیها اطلاعی نداشت و آنها هیچ چیزی راجب دیگران در سایر نقاط دنیا نمیدانستند آنها جنگها مبارزات سیاسی نوسانات اجتماعی و تکامل فرهنگی خود را داشتند اما برای امپراتوری های چین یا حاکمان بین النهرین تاسمانی ها می توانستند ساکنان یکی از اقمار سیاره مشتری بوده باشند تاسمانی ها در دنیای خود زندگی می کردند آمریکا و اروپا هم در اکثر طول تاریخشان دنیاهای مجزا از هم بودند سال 378 میلادی، والنس، امپراتوری روم، در نبرد آدریاناپول مغلوب شد و توسط گوتها به قتل رسید. در همان سال، شاه چاکتوک ایچاک فرمان روای شهر تیکال از ارتش تیوتی شکست خورد و به قتل رسید. تیکال یک دولت شهر مهم مایان بود در حالی که تئوتیهواکان بزرگترین شهر در آمریکا بود و حدود و هزار نفر جمعیت داشت در ابعاد روم کنونی اما هیچ رابطه‌ای میان شکست روم و شکوفایی تئوتیهواکان نبود روم میتوانست در مریخ قرار داشته باشد و تئوتیهواکان در سیاره زهره چند دنیای انسانی مختلف و روی زمین با هم زندگی می کردند. در حدود ده هزار سال قبل از میلاد، سیاره ما هزاران گروه انسانی را در خود جا داده بود. دو هزار سال قبل از میلاد، این تعداد به چند صد یا حد اکثر چند هزار تن کرد. سال 1450 میلادی این تعداد به شدت نزول کرد و باز هم پایین آمد. در آن زمان، درست قبل از دوره اکتشافات اروپایی، زمین هنوز جایگاه تعداد چشمگیری از دنیاهای کوچک مثل تاسمانی بود. اما نزدیک به 90 درصد از انسانها در یک دنیای واحد بزرگ زندگی می کردند، دنیای آفروآسیا اکثر آسیا، اکثر اروپا و اکثر آفریقا به اضافه بخش قابل توجهی از صحرای آفریقا توسط پیوندهای قابل توجه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با هم در ارتباط بودند بخش اعظم ده درصد باقیمانده جمعیت انسانی دنیا بین چهار دنیایی تقسیم شده بودند که از پیچیدگی و اندازه قابل توجهی برخوردار بودند یک دنیای آمریکای میانه که اکثر آمریکای مرکزی و قسمتهایی از آمریکای شمالی را دربر می‌گرفت. دو دنیای آند که اکثر آمریکای جنوب غربی را دربر می‌گرفت. سه دنیای استرالیا که قاره استرالیا را دربر می‌گرفت. و چهار دنیای اقیانوسیه که اکثر جزایر جنوب غربی اقیانوس آرام از هاوایی تا نیوزیلند را دربر می‌گرفت. تی 300 سال بعد قول دنیا دنیاهای دیگر را در خود بلعید و در سال 1521 وقتی اسپانیایی ها امپراتوری آستک را تسخیر کردند آمریکای میانه را هم در کام خود فرو برد و اولین قنیمت خود را همزمان در طی جهان نوردی دریایی فردیناند ماجلان از دنیای اقیانوسیه به آورد و مدت کوتاهی پس از آن فتوحات خود را کامل کرد دنیای آنت در سال 1532 فرو ریخت یعنی هنگامی که اشغالگران اسپانیایی امپراتوری اینکا را در هم شکستند اولین اروپایی ها در سال 1606 پا به قاره استرالیا گذاشتند و آن دنیای بکر با شروع استعمار بریتانیا در سال 1788 به نابودی گرایید. 15 سال بعد بریتانیایی ها اولین پایگاه خود را در تاسمانی مستقر کردند و آخرین دنیای انسانی مستقل را به عرصه نفوذ خود در آفروآسیا اضافه کردند. قول آفرور به به صدها سال وقت نیاز داشت تا آنچه را که بلعیده بود هضم کند اما این روند برگشت ناپذیر بود امروزه تقریبا همه انسان‌ها یک جغرافیای سیاسی واحد دارند تمام سیاره به دولتهایی تقسیم شده که در چارچوب بین‌المللی به رسمیت شناخته شدند. آنها یک نظام اقتصادی واحد هم دارند. نیروی بازار سرمایه دور ترین گوشه دنیا را هم تحت کنترل خود دارد. آنها همچنین یک نظام حقوقی واحد دارند. حقوق بشر و قوانین بین‌المللی در همه جا حداقل به طور نظری اعتبار دارد. آنها به علاوه یک نظام علمی واحد هم دارند. کارشناسان در ایران، اسرائیل، استرالیا و آرژانتین دقیقاً یک دید مشترک راجب ساختار اتم یا معالجه بیماری سل دارند این فرهنگ جهانی واحد همگن نیست درست مثل یک بدن زنده واحد که از انواع بسیاری اعضا و سلول تشکیل شده فرهنگ جهانی ما هم از انواع متفاوت شیوه‌های زندگی و گروه های مردمی تشکیل شده از دلالهای سهام نیویورک گرفته تا چوپان افغانستانی اما آنها در رابطه نزدیکی با هم هستند و به هزاران شکل بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند آنها هنوز با هم بحث می‌کنند و می‌جنگند اما در بحث‌هایشان از مفاهیم مشترک و در جنگ‌هایشان از سلاح‌های مشترک استفاده می‌کنند یک تصادم واقعی تمدنها به دیالوگی میان کرها میماند. هیچ کدام نخواهد فهمید که دیگری چه میگوید. امروز وقتی ایران و آمریکا به روی هم شمشیر میکشند، هر دو به زبان دولت‌های ملی، اقتصاد کاپیتالیستی، حقوق بینملل و فیزیک هسته‌ای صحبت می‌کنند. ما هنوز خیلی راجع به فرهنگ های اصیل صحبت می اما اگر منظور از اصیل این باشد که به طور مستقل تکامل یافتند و دارای سنت های باستانی محلی هستند که از نفوذ بیرونی بری بودند پس هیچ فرهنگ اصیلی برجان نمانده. تایی صده های اخیر همه فرهنگ ها به دنبال نفوظ گسترده جهانی تغییر کردند تقریبا تا حدی که دیگر قابل بازشناسی نیستند یکی از جالبترین موارد این فرایند جهانی شدن آشپزی قومی است در رستوران های ایتالیایی توقعین است که اسپاگتی با سس گوجه فرنگی ببینیم در رستوران های لهستانی و ایرلندی سیبزمینی فراوان در رستوران های آرژانتینی می توانیم بین ده نوع استیک گوشت گاو انتخاب کنیم در رستوران هندی فلفل قرمز تقریبا در هر چیزی وجود دارد و نقطه اوج در هر قهوه خانه سوئیسی شکلات قلیز گرم زیر کوهی از خام است اما هیچ کدام از این غذاها برای این ملیت بومی نیستند. گوجه فرنگی، فلفل قرمز و کاکاو ریشه مکزیکی دارند و تنها بعد از فتح مکزیک توسط اسپانیایی به اروپا و آسیا رسیدند. جولیو سزار و دانت آلگیری هیچگاه اسپاگتی خابانده شده در سس گوجه فرنگی را دور چنگال خود نمیپیچیدند حتی چنگال هنوز اخترا نشده بود، ویلیام تل هرگز شکلات را نچشیده بود و بودا هرگز فلفل قرمز به غذایش نزد. سیب زمینی همین 400 سال پیش به لهستان رایلند آمد و تنها استیکی که کسی میتوانست در سال 1492 در آرژانتین بچشد از گوشت لاما بود. فیلم‌های هالیوود سرخپوستان دشتها را همچون سواران ماهری تصویر کردند که برای دفاع از آداب و رسوم پدران خود به عرابه مهاجرین اولیه اروپایی حمله ور می‌شوند اما این سواران بومی آمریکایی از هیچ فرهنگ اصیل و قدیمی دفاع نمی‌کردند آنها محصول یک انقلاب سیاسی و نظامی از بودند که در دشت های آمریکای شمالی تای قرن های 17 و هجده هم گسترش می که نتیجه وارد کردن اسب‌های اروپایی بود. در سال 1492 هیچ اسبی در آمریکا وجود نداشت. فرهنگ قرن 19 هم آپاچی ها و سی اوها ویژگی های مطالباتی بسیاری داشت اما یک فرهنگ نوین بود، که بسیار بیش از آنکه حاصل یک فرهنگ اصیل باشد، نتیجه الزامات جهانی بود. چشمنداز جهانی از یک چشمنداز عملی، مهمترین گام در روند وحدت جهانی در صده های اخیر وقتی برداشته شد که امپراتوری ها شکوفا شدند و تجارت رونق گرفت. پیوندهای نزدیکتری میان مردم آفروآسیا، آمریکا، استرالیا و اقیانوسیه برقرار شد. به این صورت فلفل قرمز مکزیکی، سر از غذای هندی در آورد و دامهای گاوهای اسپانیا شروع به چریدن در مرغزارهای آرژانتین کردند. اما از نقط نظر ایدئولوژیک یک تحول باز هم مهمتر در طی اولین هزاره قبل از میلاد رخ داد. و آن زمانی بود که اندیشه یک نظم جهانی شکل گرفت هزاره پیشین تاریخ به کندی در مسیر یک وحدت جهانی حرکت می کرد اما اندیشه یک نظم جهانی که بر سراسر دنیا چیره شود هنوز برای اکثر مردم بیگانه نمی نمود. انسان خردمند، تکامل یافت تا انسانها را به ما و آنها تقسیم کند ما گروهیست که هر کجا که باشید در اطرافتان است و آنها هر کس دیگری است. در حقیقت تا به حال هیچ حیوان اجتماعی به منافع کل نوع خود فکر نکرده. یک شامپانزه هرگز به منافع گونه شامپانزه فکر نمی‌کند. هیچ حلزونی شاخک خود را به خاطر همبستگی جهانی حلزون‌ها تکان نمی‌دهد. هیچ شیر نر آلفایی هرگز برای کسب مقام شاهی برای تمامی شیرها مبارزه نمی کند و بر سردر هیچ کندوی اصلی شعار زنبورهای کارگر همه دنیا متحه شوید آویخته نشده. اما انسان خردمند با پاگزاردن در انقلاب شناختی بیش از پیش در این زمینه مستصنا شد. انسانها شروع به همکاری منظم، با افراد کاملا ناشنا کردند که برادران و دوستان خود تصور می کردند. اما این برادری جهانی نبود. جایی در دره بعدی یا در سوی سلسله کوها می توان هنوز آنها را حس کرد. وقتی منس، اولین فرعون مصر، مصر را در حوالی سه هزار سال قبل از میلاد متحد کرد، برای مردم روشن بود که مصر مرزی دارد و، در فراسوی آن بربرها به کمی نشستند. بربرها بیگانگانی تهدیدآمیز بودند و فقط تا به آن اندازه مورد توجه قرار می گرفتند که زمین یا منابع طبیعی داشتند که مصری ها به دنبالش بودند. تمام نظام های خیالی که انسان ها می به این رقمت داشتند که بخش اعظم بشریت را نادیده بگیرند، هزاره اول قبل از میلاد گواه ظهور سه نظم جهانی بلقوه بود که پیروانشان می توانستند برای اولین بار همه جهان و تمامی نژاد انسانی را به عنوان یک کل واحد تحت یک مجموعه قوانین مشترک بپندارند هر کسی حداقل به طور بلقوه ما محسوب میشد و آنها دیگر وجود نداشت اولین نظم جهانی که ظاهر شد نظمی اقتصادی یا نظم پولی بود دومین نظم جهانی سیاسی و نظم امپراتوری بود و نظم جهانی سوم نظمی دینی بود نظم جهانی دین مثل بودیسم، مسیحیت و اسلام سوداگران، فاتحان و پیامبران اولین گروههایی بودند که موفق شدند از دوگانگی تکامل ما بر علیه آنها فراتر روند و نیروی نهفته وحدت انسانی را تدارک ببینند. برای سوداگران همه دنیا یک بازار واحد بود و همه انسانها مشتریان بلغه. آنها تلاش کردند یک نظم اقتصادی مستقر کنند که همه را در هر کجا دربر بگیرد. برای فاتحان تمام دنیا یک امپراتوری واحد بود و همه انسانها توده‌های تحت سلطه محصوب محسوب میشدند و برای پیامبران تمام دنیا در بردارنده یک حقیقت بود و تمام انسانها مؤمنین بالقوه آنها هم تلاش میکردند تا نظمی را برپا کنند که برای همه کس در همه جا مناسب باشد تایی سه هزاره اخیر انسانها ها تلاش های بلند پروازانه بیشتر و بیشتری کردند تا به چشمنداز جهانی صورت تحقق بدهند. سه فصل بعدی کتاب نشان خواهد داد که چگونه پول، امپراتوری و ادیان جهانی شیوع یافتند و چطور پایه های وحدت جهان امروزی را بنا کردند. ما با داستان بزرگترین فاتح تاریخ شروع خواهیم کرد که از قدرت تحمل و سازگاری خارق‌العاده‌ای برخوردار بود و می از انسانها مریدان آتشینی بسازد. این فاتح پول است. مردمی که به یک خدای واحد اعتقاد ندارند و از شاه واحدی تبعیت نمی کنند، بیشتر مایلند از پول مشترک استفاده کنند. عسام بن لادن تمام نفرتش از فرهنگ آمریکایی، دین آمریکایی و سیاست آمریکایی، شیفته دلارهای آمریکایی بود. چطور پول توانست موفق شود در حالی که خدایان و شاهان شکست خوردند؟